اللّه، صلّى و سلّم و سلم بس رود باد تالون در باطلش. اون وقت در خوشت و امارات و همشت به خاطر تدرییت از مرمون شیخ از سایه عبدالله هم که حالا اون رو تقسیم به پس بازن و, و این تقسیم و اتبا مرمونه یک و موسیقی و را دید به و این در کسور صادقین نبوده در بخص اوجه جرمه این نقلی بخص که بخص رو بخص رو و رو زن رو در بحث در رو برس و برس و برمان... برد برد میشه بود تقریبا تقریب بیشتر بر این حق که مطرح شد این تقریبه رکع اصلاف و همین اصلاف ادوزیشی میدن اصلاف درده بشار با اردوزو شد یعنی تقریب شد اون تفکر حس بشینی چند بود اما این که تقریب شد این تفکر زیر بناش یعنی روشنگی اصل این تخصیم بندی لحاظ خالات مکملت رو مانگی رو به در حسول بکنم این اصلاف این اصلاف این نهر بدخور با طلبات مرکون شیخ نشود. ویشت این قسمت هایی که ادارت طلبان تحرام داریم این که اصلاح هاست که زیاد کردن ها به و به طلب رو پیش و پسی برسارن به جبار را کردنیم که به مقام ارز شد چونکه یه پنشیز سطحی رو برمان موردنین مطرح تردن که پسی با مکلمت به در حاضر شکت بودن و بعد در مجالی رو بیان کردن که یاد آغاز معلوم سابره هست یا نیست استطاع در معلوم نبود هم با شک به سابرانه در تغییر ایشان شک در مکلمت هم اگر این اختیار اختیار احتیاط دارم میتونه احتیاطا این خلاصه یک تقسیم مندیدی که میشان برای مشاهی و حصول بذاشن تمام این مواحظ حق و اصلاحهایی شده تمام این مطلبی دارن ارز کردن میان بردید و ختم در اینها حق و اصلاح هایی شدید خود از این سالش اجیمالا در مقدمات بحث و جد و اگر این بحث شیم بوده می انصافا حالا این بحثی که صحبت شده تئوریه و نیروهای فنی خودش نه بحث دیگه‌ای نیست الا اجمالا خوبه بعد سابقا در تقسیم بندی الموصولات را چند بار معاصر ما غیر به اصطلاح تشکیل و تنظیم یک کلی و شکل کلی و نماد کلی الموصول مناسبه که آن دو در, در این اصول مقدمه برای این اصول ندیزی، اول بخش اول اصولی یک مقدمه عمیق تهیه بشه چرا میگم مقدمه عام؟ فرضی در کتابی، آن مان مقدمه مبادی سال است، از که کوکالرمان من همیشه دستگیر شده. در این کتاب مقدماتی رو که آمده، 13 مقدمه از یک مقدمه مشهود میشه به موضوع اصول و از مبادله دوم وارد بحث او مشترک و استعمال مشترک و مشابه ما هيتاورن و این بحث و مجاز این به کل موضوعی را این بحث و استعمال در پس به بخص امبارات اصول حصول نداره؟ به بخص فرزم موجیه به اجما نداره؟ لذا به ذهن ما این است که اگر بناس مقدمه بر ای برای حصول نباشه باشه یک مقدمه ای بشه که به کل در اصول و حصول نازر باشه نه با خصوص مبارد ضرورات و مبارد سرزاز این رسم صدیه پس ما افتداعای نیاز به یک مقدمه در کل اصول. در هم وقتی مقاصد حسول رو مسئله درستی حسول رو معیل کردیم قبل از بوده در هر کدام یک مقدمه برای اون میخوایی مثلا فرصا یک بخص ما در اصول احملیه هست اول در بخص حسول احملیه نیاز داریم یک مقدمیه که اصول احملیه یعنی چیزامس شیه مریار شیه حسول برده کلیش شیه اون سر دراغت و از توی گفته و اصولا مثلا این برای مرضت اصل چی از در محلی و چی از نیست و مثلا ما این که برای اصل هایی که همه مقدمه هایی که شرفت بود عرض می اصل نیست اصالات و اشتغال اصل هست اما اصالات و براید نیست توزیاد رو در پس یک مقدمه برای خود رو نوشته بوده یک مقدمه هم در مقاصد اصول که وارد میشیم هر محسنی رو خودش مقدمه میگوشه دوستیم. مثلا سعی کردیم بحثو و امارات خودش مقدمه میگوشه. از هم برخورد ما قواند را تو کار میکردم از دیگر جا و من میده در تبیین میتلام به منزلی مقدمه بحثو جز این بحث رو که هردویش از دیگر جا مطرح میکنیم این الان به عنوان تنهید و مقدماتی و برای ملانسو بجرد این را خوبی تو حالا مرمون شیف پشید فتح اوبردن بعدم در مخصد افتح و در, افرد در افرد. من توضیح دادم بازم ایگوزه هست میکنم چند بار توضیح دادم اصل نوشتار شیخ اولی شیخ این محصد بندی توش نبودیم استی یه رساله مفرد بود زیرا به کتابی بیش از یه رساله مفرد بود اسم اون رساله رسالت و جیه المذنن النمزة ها و در این رساله رو جیسون مذنن رو بردنش، بهتر با رسالاتون بعد از که شما بعد بود. بعد با رساله چهارم رو بیشون کردن شد مجموعی مسائل یک تنظیم کلی ادتاق کردن شد به اطلاع بردش شایده ایشو اصول اسم فراسته اصول اما ایشان نیست بردها شد کتاب از سرکت بردون پس بنابراییم ما در نیام چهرده در این بخش میشیم خود محبوب استاد هم و از دید از اردام به همین نتیجهی که من انجام کردن مثلا آقاییی که هموند بخشه هر جزون رو و یعنی بریاییی یعنی این که هی که استفاده هم گوه ما یه ایست بخشه آنکه که همه ایستفاده هی که ایش نورن بگیرون بیان بریاییی همین درست که همونده همونده هست ما بگه از جامعه را برسه همونده همونده این اصل بگیم اصل در حجی یا اگر انگر بگیم یک دلیل حجیته با خاطره که یه دلیل یه یه دلیل خرد پس بخص حجیت رو به تدیر از توستاد و به تغییر جز به این مقابی قرار باشن که ایشون چون اشکال می که این بحث در مقابی اصولی نیست یه ارتباط ما این یه ما هم به کلام داره من سرویان شدهش دیگه تکرار نمی کنم به نظر ما این که اگر این مطلب یکی شما در درست در باشه تازه میشه بسته از روزه مقدمانه نه از مقصد الول که همانی در رسالی بوده فرای موجوده همه مقصد الول که پردن مقصد به زن سالس این شهر این مقصد این از هم بحث و کلند این بحث بجرد ما خواهد شد این یک خلاصه ای بود که ما از کردیم که احنامی که بعد از آمدن در همین بحث مقدمه مطالبه رو بیان کردن یکی دیگه دیگه در این دوره در این سال روزون درسته بندی هم کردن یک دو زید. دوره بردی هم بود یک کمی اوشندتر دسته ب به طبعی این احلام این موارد رو متعرض میشین اون دستمت هایی که مثلا یکی از آلون رو بوده یکی ریگه بوده اونا هم هم متعرض میشین که این موادس رو کی رو بوده از چکه امور روی در این مقدمات، ها طبق احلام که ما قرار میدین طبق همین مجموعی کتاب هستی که از زمان شیخ حساسایی خود شیخ حساسایی مشید سبت مقدمه ب و بعد در کتاب کتابی به سلامت مراقبای ناینی و مراقب آدیا و مراقب اسما و های کدوم مراقب است. ما آدمان در همین مقدار اتفاق که به کیلی تولیدش میکنیم چی شده و اگر هم توزیه نظری و نظر مهرداری هستی در درش اصلا آنها بایدش. مطلب اول بحث این بود که اصلا بحث از موارد اصول هست مراقب استاد اشکال کردن. به اشکالشان گذشت از ما یک جواب اجمالی دادیم و از تویشون مثال رو از کفایی گرفتن و یه می رو گرفتن شخص. و توضیحات از کردیم این اشکال من استاد که قطعه به هفت خودش من ناظره باشه اون خود رو بیمه خود که به احساس کبرای پیاس از از از از از از این مدیس بوجیهت برد بوجیهت زادی غرف این مدیسی شد اما اگر ما بوجیهت غرف و اقلالی دارستیم یعنی طابق شراحط جامعه ها و قوانین فرم کنم که یک قانونی هفت بوجه باشه در یکی نباشه و حسولا این رو ادعا بکنیم که در موارسه اعتبار قانونی خوب دقت بکنیم در موارسه اعتبارت قانونی می تواند قانون در مراسل مجیدی مثل قدرم تصرف بکنه کنه نه این که تصرفی نشه مثلا بگرد رفت از پلان سلاح خاصی شد مجیده نشد مجیده نیست اگه قدرین به سلام، برای فلان شخص فیده شد مجیده برای شخص دیگر مجیده نیست و همه مجیده این اینطور شد انصافاً بحث از مجیده قدرمیسه بحث رو برای خبروانه نیست بین ای این دو تا هیچ فرق فرقی که بین این دو تا این است که هجیت قتل اغلایی عامه اغلا به طور طبیعی حالا ممکن است یک عدهای در یک جامعه قبول نکنند عامه به خاطر اختلال نظام لازر نیات قبول کردند اما مثلا فرض کنید یا اجماع یا ش دیگر یا های علما یا فتابهای مشهور این را عامه قبول نکردند مثلا و این شعرد رو این شعرد فرسوهایی فنو و اوغرایی هم داره اینطور بسید برای باشه باشه حالا در مطلبی که بخوان فرسوی با مثال به مارکس نسبت بدن هفتش رو از بزرگان و مفکران و فرسوی محصلان که را مارس محلی کنیم، در بیشه و اوغرا را مرس نگه این ها که محلی را شیشه از بزرگان احناف و امامی های مسئله رو اینو خود درو همینجا نذره باشه میگن اینها گفتن مبنا هواه رو گفتن بعدا رو گفتن پس طرز واقعا میگن بله این طرح آور نیست اما این نیست که اصلا پیو اوغلا حجت نباشه ممکن است شارکت ایجاد بکنه به عبار انداز هر چند که شد شما میتوانید شرط انساط بشید از فرق بین قرد و غیره در این نکته است غیره قرد هم صلاحیت اعتبار داره قرد صلاحیت اعتبار شو آنوه مردمه ممکن از در یک جامعی رو خصوصیات به و تمدنی که دارد قرد حجت نباشیم که تو مطلبی گفتی این مطلب رو وقتی کار بگیم که مثلا فرسونی تماس دیدیم مستقیم با مجلس شورا پارلا ببینیم این شد یا شدیه این که یک روزدان ده تا روزدان ها بینیسی یا ده, ده نفر ده. یا این کافی نیست ولی مستقیما از مرضای خواهان روزا بگیم چون تو شما یا من پیدا کردن ده نفر ده خوستاندارم نزگو پرس من خرش بده تنها راهی که شما داری پس از خود هم باعث با هر هم از این راه میاد باشه. تماس میگیم با اطلاعی مجلس یا کدام بعد از اونها مطالعه. حالا تو گیم میگه که چی برای سیدی سیگی شروع کنی. سیگیش آماده کردن راه هر مونتری میشه. پس برنامه آموزی یا دیجیتال این مونتری بچه شما رو بگیم آن دو در کردیم. به داریم. یعنی از همه همه همه از این اجتماعی در از قدرت و قابلیت ها بس ما تو جده اینه. چون ما در یک اگزاوی خاصی قرار بیم در اعتبارت قانونی قابل بر این هستی قد حجیت فیده کرده. اما این نیست که ذاتیش باشه به شما نبیده ایم دازم بیاده اجتماع درد و در محصر گذشته کاملا کلارا نرم کردن اصلا در قلوم حقیقی قرد حجیت نداره مثلا بحث حجیت مطرح نیست در علوم حقیقی تمام بحثا و واقع گرایی این بعد از این اصطلاح رو من بکار رو دارم ما من از حجت یا حجت گرایی یا حجیت در مقابل واقع گرایی یعنی ما در جاییش به دنبال و هستیم این در مقابل حجه تائید که زنگوله حجت هستی یعنی چیزی که ما رو تعین کنه به واقع ورسانه یک دو یم دهی طرفین اعتماد بر او. اون فرض کنید شاگردی بخواد تئوری که بینیسه یک تائید بخواد بنویسه میگه من فرض دارم سقراط اینطور گفت سنافت سقراط در اخلاق و من تاکید دارم که مطلب همینه حالا یه بحثه اصالت شد نه این یه موجت نیست این حجیت مب در این جور موارسه لی وگیری من ق دارم که مثلا مرض ق عمل بلان برد. این فررد خ درتون نمی می کنیمیم بازی یک آلت خاص داره در حالتی تجربه میخواد تجربه های مختلف میخواد چون در هر تجربه یک عواملی که ممکن است باشه باشد حرفف میکنه 20 تا تا عامل محتمل هست باید 20 تا تجربه بکنه در 20 تا تجربه اون عام ها یکی حرف میکنه مثلا ترشیه مرده داره در این انسان تجربه این یک انسانی که فرضیم مثلا در منطقه سرسی بوده این تجربه انسان رو منطقه گرسی بوده هی باید عوامل متعدد رو حس بکنه بعد از حس اوامل متعدد و بعد از تجربه متعدد به این نظره که این مرض منشه این بوده این اوامل دیگر تو این کار موثر نبوده این معنی خوشیت واقعی نداره. ما از کرد این موارث توی موارد علوم اعتباری میاد و محسوسا توی علوم اعتباری ما دیده که در بایی سرف و نحوینام که بخص نکنیم علوم اعتباری که ما مرادمونه اعتبارد قانون. قانونی اینه هست که در جامعه بشری به طور کلی به استثنای یا جامعه خاص برای رفع مشکلات جامعه هر جا که یک منشه اعتبار قانونی هست و رو به این پدر و این دولت باشه اعتماد روی قرط میکنن میگه من قرط بیدا کردم اعتماد رو می کنم بس فقط سریعی اینه اینم باید بس باشه در همینجا آیا به مجمعه این که قرط بیدا کرد کافی یا باید اسباب تولید قرط خودش رو هم بگه ما مؤتمره اونم باید بگیم هم شهر روی هم نمگ قرد بذاره کافیه اون هم به نظر ما کافی نیست خلاصه نظر رو که این اینشالله درمی شداره به اسفار رو میکنیم این از که باید شواهدی رو ارائه رو ده برای بسود قرد که نور درصد اون شواهی قده به صوره اقل در اقلش نور درصد اون شواهی پیش و قغلا سگید باشه و قابل اعتماع درد درصدش هم شخصیت خودشه چ دیگه خیلی جلب و تعدیل بکنیم 10 درصد در شخصیت خودشه نورد درصد باید شواهر و اغلایی باشه و از در این بحث حجیه اینطور که الان زواهر کلام شیخ هست اختصاص به قطعه اصطلاحی هم نداره سه تا عنوان داره که این بحث حجیت از بین معنی در اون یاد یکی قطعه یکی اطمیناتی سکون نفسه یکی علم که غرفی تدرقیتش وزوره علم چیزی که واضح باشه نه فرقینه امور مخالف نباشه این سه چیز رو ما در قصود بخیم اثبات بکنیم که اینا حجیت دارند پس اجمینا و موضوع یا اصطلاحاً علم اورفی. این سه چیز اگر حجیت استابرست رو باشد اینا یه حجیتیست که قالباً در زمینه اجتماعی در بین اغلا هست ممکن است یک جامعه یا یک پدری با بچه اینطور نداشته باشه اما به طور این هست پس مباحث قط طبق تصدیلش و مقصد چون بودجه قط رو ذاتی گرفتن یا حالا خود ایشان که ذاتی نگرفتن اقلی گرفتن این ساله ارز مقلایی به هر حال نگرفتن ایشان می این بحث بحث اصولی نیست اما طبق این تصور ما اون بحثم تو اصول هست البته این بحث تو اصول مشاهرز نشدن یعنی احل سنن نیامدن برای قد با عنوان قد قدش خاصی بارد بشن من هم در میان کلمات قدما ندیدیم اما لابلای کلماتشون هست مثلا قطعیت رو لاسونافی زنیت تریف مثلا زنیت تریف چیز قطع محل ارتکازشون بوده اما این نحوه بحث را مثلا در کتابهای قبلشه من در کتاب مخاطب و رسول من را مهموم استادشان محمد مجالد دیدم حالا یادم این مناقش من مهموم نرابی دیده باشه میگنم در از این که در کتابها طبیع احل سنت بحث جلازانی واروان وجهت برد ندارد اینا هم ذهنیتشون این بوده که در اینطور نیست که فیلنسا وجهت باشن اگه من برد پیدا کردن مادین مکشین وجهی که حجت زاطی می‌رسانیا قهر یا قفلی بروزن. حالا ان حالا به هر حال بحث بعد خواهد آمد من فقط محاسن اشاره بکنم و اصولا بحث اینجا بحث حجج قطع و حالا ورود و تکنیان نیست بحث زوایای دیگری داره که ان شاءالله اون زوایای کلی رو بعداً زوایای نشونه تکایلاح می‌کنیم در حد حد اصلاح با کلمات شیخ و کلمات بعد از ایشون یان اصلاً دو مالود تو دو مسالی می‌مورد چندی یوشی که توی این مورد چندی دیگه می‌شود. اصلاً کومنگا جام کامل نیست. کار کار است. داشت ولی من کار داریم. اشواج سازی لوبه کاری که آهی. شما اگر نگاه بکنید یک وقتی به رساله مشکلش بیشتر قادر محاکمه دادگاه خود مشکل گونجینه نوشه این برای افرادی که مبادی علمیشون ضعیفه خصوصیتش زیاده قسط رو میگه خب قت یابین مبادی همین به مفهوم شه جای مبادی که در رسالهش میشه هر فردی مدعی مبادی شما از شما به علوم هلدی و طبیعی نرید قضا و مضا و فیزیک و شبیه مثال بیانیم تفرد تو داره اعتبارت قابلی مثلا بحث ما تو داره اعتبارت قابلی یعنی اگر بچه گفت رفت پنج تنون خیصه از که من 5 پنج تن ما فلانی از شوان هر فرز پنج فیداره چی بینیم میتونیم یعنی معذوریت بقوله ولذا حجیت و عدهی به معنی معذریت و منتزیت گرفت مثل خود که کاری بزرگات که اعتباری, اعتباری چی آقا عن جهه دولت که اون حقیقه حقیقه. ترتیب آثار قانونی که اعتباریه. شما فرض بده که این خبر ممکن یک اثر که بعد از رحمت الهی متراکم بشه ما حد به جو نه خب اینا اینا مکتوب که اینکه رو در تمام این موارد تاریخی درسن. شما شب شب دنده ما اصلایی در این موارد قطع موضوعیه مثلا قطع نیست اینا چون قصد و طریقه گرسن مطبوعون انگ گرفن که در این موارد قطع طریقه در که ما داریم که در این موارد قطع موضوعیه یعنی قطعی که در اعتبارات قانونی به کار برده میشه تو مقام تنجز تکلیف من نمیخواستم برد اون قطع موضوعیه قطع طریقه نیست این چیزی نیست که آدم هر راهی در پیدا بیاد، هر پیدا شد در هر موضوع موضوعی پیدا شد نه اینطوری نیست. حالا ایشا توضیح خودش بده. موضوع دومی رو مرحوم استاد مطرح شدن که این موضوع مرحوم استاد ایشون در اون واقعه‌ی نایینی مطرح و مرحوم محقق اسوانی که درصل الله ونعسه، محقق اراوی، اراخ چونسون نه ایراد. نسبت به من نه ایشون مصالحه نگندیشه. و مرحوم محقق رفیداران در اون که من به منزله میکردم اول کردم اصفاحو گرفتن که تشکر میکنین توی اون تحریراتی که که سابر میوردن دراصاد این بعد از مقصد اوله این بعد تاریخ خوبی داره اونجا نداره که توی تو تقریر با انرژی جاش حرس شده در اینجا مثل معلومه ای قبل از اول مقصد اول دارن در اونجا بعد از مقصد اول حتا همینه هم حالا اونیش گفته شده گفتش بدید حتا همینه که اول مقصد اول باشه مرموم مستاد متعرضی این مساله شده مرموم آی هم متعرضی این مساله <تصفيق> نکته داره اول اون زرافت نکته رو تنمول بکنید بعد یواشهاش یعنی متعرض کلماتشون بشین اون نکته این که ما وقتی میگیم مکندف یا قرط داره یادن یا, یا شرک مکندف اون وقت قرط رو جدش به تردیل یکیشون زاکی یکیشون عقلی میدونن مرموم مستاد عقلی میدونن این قاعده تا عادتا اون چاییسته به اعتبار قانونی خود انسان بخوره اصلا مثلا فلر به چرا پنج شن می گفتی خب من یعنی که لازمه شما پنج شن می خوام یعنی خب موی یعنی از کجا پیدا شد چند لحظه ده هفت عمر ایمان مقابل حساب کردن به حد اعاده و امم ایمان ایشو کامل و حد اعاده افر اش پنج شن من خب این یمن که در اثر میگن یعنی زادی تو زادی این یمن از ذاتی توجیه ذاتی این بحث درست سر این نمس هست. این حجیت ذاتی یا حجیت اقلی یا حتی اگر آن این که در واقع قطع آقای وارد شده این حدودش چیه حدود آیا حدودش نیست که من به وزیفه خودم پرده کنم حالا فقط شما به وزیفه خود رو قرده آیا قصد شما به من شما خود که قصد پیدا کردی؟ دقیقی؟ شما به وزیفه خود رو قطع پیدا کردی؟ یا به قول خود رو آیا این برای من هم کار درست میکنه منی که قصد ندارم؟ لذا از اینجا این مطلب مطرح شده که مراده از محللل خصوص مشههده این مشهل که اگر قرد فیضا کرد خوب دارش خود <تصفيق> اما مغلب که شخص دیگری این به فقط مشهل رب چی نداره مشهل قرد خود داره, داره. <تصفيق> شما اینجور می اعلن انن مکلد اعلن تفته. این مکلده که اگر مراد مشهل باشه خیلی خوب سا کن مشهل قرد علم ها خودش پیدا کرده اما من مغلده ایشان که قرار کجا نگرد دوید پس این مطلبی رو که مرحوم شهر گفتی این تقسیم به این اختصاص به مشهر داره. مزوح مزوح مزوح مزوح. ها، از اون طرف عده یا گفتن نه مراد از مغلد از التفت سوا اون التفت هوبه یا التفت مشهرد هو این التفاق لازم نیست از خود این باشه لازم نیست این خرق از خود این باشه حالا ادهی ایسانی رو گذاشتن میابن یعنی مشهر ناقب از مخلط میشه در این خرق در سر این هست که خرق برای مشهر پیدا شده در برای طرد دیگری پیدا شده این حجیت ذاتی حجیتش عقلی حالا فرض کردو این خصیم باید چه رفتی به مقلد داره؟ شما باید یک کاری بکنید که بگید قطع مشتهد چه مقلد هم میشه که مقلد هم قطع داره شما بیشتر قطع داره برساله نبوی اون قطعی که بگه شد. آیا این تقسیم که مشهدیه متلب یخص و لوگه این به خصوص مشهد میخوره یا شامل مقلل هم میشه که قطع مشهر قطع مقلله این یک زاویه بحث خود خط بکنیم یک زاویه دیگر بحث اینه که ای که ما برای حجیت داریم اون لسان دلیل بحث ظهورات آیا اقتصاد به مشهر داری یا شامل مقلل هم میشه مثلا اگر قبولی کنیم که ما در ثواب و جاری میشه غیر از موضوعیه خب لا تن قضیه به شک تن به شک این لا تن قضیه کامن شرط نمیشه این خابیده اگر زخله اشاره بکنم چه یه زخله چه خابیده کلا اونشان خودش به صورت واقعی خیلی که پس بنابراین آن یا به این خاص مشهد لا تنواز یقینه بشن شما میدونستید این آب کر نبود نجس بود فرض مثلا کد به مفتوه های شما سیوش وجب فرض بود و نجس بود چاردن وجب دیگه روش آب ریفتیم. شد کر آیا هنوز هم نجسته یا پاک شده علماء محمم کرن علماء نجسته الاتوم نمکنن خب شما میگیر استثاب جاری میکنیم حالا این آب نجست بود حالا به استثاب برای نجست. این استثاب رو استظامن استثاب در شباز رو بکنیه میگن چون نمیدونیم شعاره مقدس این آب رو نجس قرار داده یا پاست خیلی لا تنقضی یقینه به شک شما رو میگیره یقین شما به نجاست بود شک شما در تهارته لا تنقضی یقینه به شک میگه حکم کن به نجاست. آیا این لادن قزل به شک مقلد رو هم اینجوری به صد مقلد است فرض خاص اون آیا این لسان جوری است که خود به خود شامل مقلد هم بشه یا نه در لسان جری یک زوایایی هست که این زبایی انحراف ایجاد این میکنه که اصلا مقلد شامل نشه مواظب است که وقتی داشتم اینکه مثلا در اون تویه مبارک فرمان لا فیما هن یا در اون کلام بزرگاران امام مهدی امام حاضی و در امام عسکری فرمود که ال امر و یا ال امر صدق سقط فَسْمَعْلَعْ وَعَتِ اُحُفِ اِنَّهُ سَغَتُ الْأَمِنِ این فَسْمَعْلَعْ آیا این یعنی اسْمَعْلِ الْأَمِن و وعَتِ الْأَمِنِ از سغت آیا این خاص به مشهده این لسان دلیل ظاهر خود لسانی که اخلاق داره خود گیریم این کار گرم لاتن و غزلی همینه به شکتی شده هموند اما گاهگاه یه غیر از ظاهر ذری یک نقطه ای در مثلا خلال کلام میاد که مراد فرص خصوص مشهره ما از کردیم در وقت روایت وردان و سریعه یا مقبوله یا عمر نهنزله در اونجا میگه این دو مشهر مخالف هم اختلاف پیدا کردم بخاطر اختلاف روایت امام سلام الله کلام و خطاب به مثلا فلیون در فیزالک به اصطلاح روایتی که کردن یه هر دو اردو شما فلیون در فیزالک لا مشوره بین اصحابنا به و کتاب به, به کیه و دع شاذ نادر فعل سوال چه کلام و, و مشروع اعمال يوخذ مافي خود مخالف ما الامانه ان الرس این خود کتاب بکیه سوال ظاهر اون کلامی که کتاب با ما نه نزله است آیا این عبارتی که در فرچین این روایت معروف که با عنوان به استراق مساله صد روا به خط به آمده این کتاب روایت بکید خود به مشهده بین اصحاب این خود به مشهر و اصحابه چون از صدور روایات ما در مدینه بوده سبت و زبت و تنقیه و تذکیهش ابتداعا در کوفه بوده خب این کلام امردن حضرت ساکن کوفه هست ما تو کوفه هستیم دو جور کلام هستیم یکی از شما اینجور امام میتونه خود به مشهر و این اصحابه این خود به مشهر و اصحابه خطاب به یک مشتهه ظاهرش اینطوره، طوره خطاب که خیلی آثار علمی توش داره دقیق آیا خود به مشهره بینه به مطلب مردمه عوام و غیره همام؟ خیلی خب ها یکیش اینه یکیش نیگه تشخیص شهرت میگم خب این کتاب با همه باشه این اشکالی که تو سقیق بیاد بگه آنجان در این مسئله دو تا روایت یک روایتش بیس نفر نمکه ارازش دو نفر اون روایت مشهور پس مقلد از این جرسیال شاحت شد تشکیس شهرت هم دارد مقلد از این جرسیال شاحت شد تشکیس شهرت هم دارد این روایت رو بیس نفر نمک کردن روشن شد؟ حالا مقلد بگه امام فرموز به خود به مشیح رویل اصحابه تأکید اینه که خدای من مشهوری که که کارش اینه به کتاب از اون کافی و تحقیق و استفسار و از ذو روایات و مقابله و مقارن اونها مشهوری میاد جناب شاد به کامپیوتر هم روشنه یک روایت کرمیه 20 سال بعد طلب مقابله قصمون میشه مشهور میشه شاذ بناده آیا کتاب خز و مشهره بین ائمه شامل مقلد هم میشه دقیقا هم چه نقصه شد؟ پس یک نقصه بحث در اینجا در حقیقا یک بحث قانونی روح قانونی برمیده که بحث ازوره یک بحث دوم یک بحث ظهوراتیه مربوط میشه به ظهورات الفاظ لا تنقض علیقه این لا تنقض به خصوص مشهده مثلا در روایت اومده نهنزله به نظر ما واضحه که خطاب امام صادق ساملا علیه به عمر و نهند داره فردا آشنا و خبیره یعنی زبایای کلام و دقایف کلام رو منطبط میشه یک فردا آمیه صرف نیست اونه خیلات کنگوزه یقینه یعنی به شک تو لاعضر لحظم موالینا فکر تشکیف فیما یعنی هم ناسقاتنا این چه تو آیا این؟ لاوزنعهد می موالینا یعنی خصوص مشترکین یا شامل و مقلدین هم میشه آیا قرائنی ولی قرائنی سیاسی قرائنه حالی در ظاهر کلام آمه. که عامه میگه عادن میفهمه که احتجاج بحثون داره که لاتنقض عام تویش هم در ایال مشترک خصوصا در ایال جا که دهون لاین قطو یقین باشه اینطوری هم در تنقض عام حساب میشه آیا یک خصائصی در کلام هست که انسان احساس بکنه این حکم مربوط است. یعنی عدله هجیت و هجه و اصول عملیه اون عدله شان آیا اطلاق دارن شامل و مقلد بشه یا اطلاقی نداره؟ این اختلاف شده بین دو سو از بزرگان مربوطی نایینی میگه نداره. این عدله خاص مشه لا فنگذر یقینه بشه این خاص به موشعه مقلد رو شامل نمی‌شه مفهوم واضیا میان داره اطلاادر هزار شامل میشه مفهوم استاد هم با اینکه شاگرد معروف ناینی خیلی هم با آرایشون اعتواض دارن اینجا متواعت با واضیا کردن من مارخویی فرنگ شامل میشه پس این به عنوان بحث دوم بحث بعدی هم نیست البته تا اونجایی که من نگار کردم که کلمات ناینی ثمره ای برای ذکر نکرده. معمولا این ظاهر نیست ثمره اما ممکن است انسان گفت که یا همه کلام مولانا که همه چیزی به آخر ثمره از کلام در بیاد اما آغازی تمره رو ذکر کرده آقایون تصریح ندارن اول اگه خواستن از سرداد مولانا که خطاب این بحث رو در حاشیه تنقید مولانا استاد اضافه کنن چون تداست ایشون واضح نیست در این جهات چون تو توی تو زهنم هست اون تقریبات اولیشون واضح نیست میگه میگه اگر گفتیم خاص مشهره مشهر فقط باید فتوایه به حفر بده. مثلا میگه اگر آب قریب بود و بود و تومبه مکرن نگست هست این بود اون استصحاب بقای نجاته این فقط وزیفه مشهره که تشکیست شده این ثمره رو به این سبحت مرحوم استاد الان من این و سمره رو اول گفتن بعد متعرض کلمات و استاد میشم ما بحث استاد رو خیلی مختصر میگیم چون ما هم در تقریب کلمات آزیار مرحوم یعنی بیشتر صحبت کردن بحث اونجا میذاریم فعلا از در اندازهی که اگه شب مطالعه کردید عبارت مرحوم استاد روشن بشه علای روشن شد برایتون پس ثمره بحث و مرحوم آزیار اینجور تعیین گردید اگر گفتیم ادله اختصاص داره به مشه سر شیء صفرش ان شاء الله عسایی میاد اجمالا هر میگم شما اینکه ابهام نداشته باشه واژه تقلیدی برای شما نباشه من موافقم درین که یقینش ذاتاً قضریه نباشه این باید واقعا یقین باشه یقین و شک مکلف یقین و شک نیست اصلا مکلف یقین و شک نداره این درجه اون یقین و شک نیست. یک چیز خیالی میکنن اگرم هم یقین کنه بکنن یک یقین خیالیه نه واقعی چون نمیتونه به مستند چون ببینید ما دو جور شک داریم دو جور جه داریم یک اشکال معروف که از شیخ رئیس نه که تا بزنجار از این دانش من که بدانم همین که نازان یک اشکال معروفی یک دوحاتی هم که درست نبوندن ده برمشان رو توی شهر بخواد درست بقوله سر فرق رو باشه شخور چیه شخور که سالها درس خود دو کتاب ها که کرده میگاند که است اما اون آقا نمید فرقش اینه اون شخصی که تازه در سابقه موقع از استاد آمد باید تحصیل علم این نمیداند که نمیداند اون ندانستنش هم نمیداند درست بده میگاند این خیال میکنه ده سال درس بخونه میداند شیخ خدایی که این من 30 سال درس ایده. اصلا جهل مقلل جهل نیست زن مقلل زن نیست شک مقلد شکی نیست این اشکال برمون داریم اصلا یقین مقلد یقین نیست این تض... اصلا به معتمد به چیزی نیست مضافن که در خواهات و حکمی کلام الان محل کلام ماست فحض لازم داره مقلل کارش بحثیست مضافن به این که تمام این مسائل اختلاف دارن داره آیا اصلاف در خواهات و حکمیه و بجر پرسی یا می خودش سرسده های طولانی داره یعنی هزار و چهارتر سال بحث از زمان صحابه بحث داره اونها آزاد این کاری ای مخلط نیست بزرگان دنیای اسلام اختلاف دارن صحبت خیلق این کاری حسن و حسن و حسنیم ترگیر نبا بندیوه امیشون گفت که طلبه های عادی باشه. یک کاریست که در دنیای اسلام در رسول الله یکی بحث هم از اصحاب در جواد حکمیه بوده که ک همون حرمت وقتی زن بعد از انفتاعدن و قبل اقتصاب خب این همه فوقها از سر اول گفتن که یحرام وقتی زن اعتماد بر اقتصاب کردن او را که گفتن اعتماد کرد برگه اقتصاب جامل میشه پس این یک مسئله عادی نیست که هر فرد مکلم این هم اشکال سوا مرون. من مختصر از که توضیح بیدم یک یقین یعنی و شک شامل یقین یعنی و شک نمیشه دو در شباهات و حکمیه که محلک سلام ما سهد لازم داره و این از مقلد نمیاد. سه اینا اصلا مبانی علمی دارن. مثلا فرصول یکی از درواه های مهم بین اخباری ها و اصولی ها همین اصلا اشکال مهم اخباری ها که شما چرا استصاب در شباهات و حکمی ها بجاری مدید. یکی از یعنی چند تا اشکال زیربنه اخباری ها دارن. فرده ها مهم نیدارن این روحات اوجت اون مهم می. اشکالاتی زیرون ها که یک مکتب درست کرد من مکتب اخباری یکی همی بود می گفتن شما رسولی ها چرا استثاب در شما رو پیمه کنید جاری می کنید دقیق فرمونید خب یک جاری هست یا نیست اگر جاری نیست چرا جاری نیست اخباری و پرسون انتراک می دارن. خود بنده هم جاری نیدونم دهد دیگه ای خواهدن استادم خواهدن که جاری نیست آیخوی خواهدن که استثار در شورد کلیه جاری نیست لیکن نقطه شو انصراف نیدن نقطه شو تا آرز میدونن خب اینا یک دیرونه علمی، یک نکات نقاط یک سیک ساو کتاب داره این اینجور نیست که هر مقلبی بشکن و باردی این مجرده لا تن قدر و شک نگاه نکنیم این واژه میکنه خود به مشهره بین اصحاب باید تشخیص بده زوایار بفهمه این میگه این مشقوه ما الان در یک در مسائل داریم صادق جواب میگه مشهور اینه این عادی نمی نه مشهورونه وقتی اعضا با هم در تشخیص شهرت این چیزی نیست که مقلد بگه آه من مقلد زوایارم که میگه مشهور من میگم مشهور باشه این اشکالاتی بوده که در مسئله بود که بعد صبح من امروز بر برگردم به همون فرق این فرق رو رها کردم میگه خاص نیست نهایت الافتار در حاشیه مصباح مرقم اصطاد زبط ایشون میگه اگر قاهر شدیم عدله خاص به مشتهده مشتهد باید فتواه بده مثلا بگه آبی که کر نهوز و تصمیم کر شد نگه اما اگر گفتیم عدله شامل مغلل هم میشه مشتهید میتونه فتوا بده و میتونه اینطور بگه ایوه المغلط این مایی که تمم کردن دلیل نداره روایت نداری طبق استصاب در شباهات و حکم کلیه که به نظر ما جارید شما میتوانید حکم به نجاست بکنی نه میگه تو استصاب جاری کن میاد مقدمات اجرای استصاب رو برای مقلد میگه خب اگر او استثابه جاری بکنه حالا فرض توی مثلا بگه آها تو این مسئله ما دلیل نداریم به نظر ما اصولی ها براحته اخباری ها میگن احتیار در ها تو حکمی تحریمیه روشن شد؟ بیاد مشهد یه دفعه بگه آقا سیگار کشیدن جایزه این یک تحدیره یه دفعه اینجور بگه سیگار کشیدن جایز یا اینجور بگه تحدیر بگه ایوالمؤمنین در سیگار کشیدن ما دلیل بر نداریم آیان و بزرگان احسا ما که اصولین براءت اخبار من اخوالام احتیاج میکنه این رو به مقلد بگه دیگه این مقلد خودش انجام بده براءت انجام بده یا احتیاط بکنه سوال आज یا اگر گفتی میگم آی تصریح تسری ندارم اگر بنا شد که این ازنده اصول شامل و حکش و امارات شامل مقلل هم بشه مشهد باید باید این کار رو انجام میده چه چه داریم بعد؟ یعنی بیاد اون مقدمات اجرای دراعت رو مشهد ذکر بکنه حالا مقلل خطا واجب به نظرش دراعت شد یا نظرش به اساس سوالی بود من چه مزیزه راست شد او من صلی اللہ علیه محمد علیه باز میخواب شنید و کم که شما تو بحث نه بیشتر در